به طوری که همکیشان اطلاع دارید این روزها روزهای زیارت پیر سبز و پیر نارکی و نارستانه و بانپارس و غیره است بارها از من پرسیدند که آیا این اینجور جاهایی میتوان به نام نیایشگاه باشه آیا با در مر اینا هم اینها چه مقامی دارند؟ اولا ارض میکنم کنم که ما منازل متبرکمون به سه قسمت تقسیم شده یک قسمت نیایشگاه هاست که بالاترین درجهش آتش رهرامه بعدش هم در مهره اینجا نیایشگاه های ماست بعد منازل متبرکه که جای نیایشگاه بوده یعنی وقتی در یک ده کوچکی که چند خانوار زدشتی زندگی میکردن و اینها استطاعت این را نداشتند که یک موبدی استخدام کنن یکی پرستار آتش باشه که دائما آتش در اون جا بسوزه اینها آمدند یک جاهای درست میکردند مثل شاوره رامی را زد و شاوره ری و شاوره اشتاری زد مانند اینا که فقط وقتی که میرفتن زیارت آتش روشن میکردند و اسود و کندوری روش میگذاشتند و بعدشان که میرفتن آتش خاموش میشد آتش دائمی نبود یک منازل دیگر بشه میگفتیم زیارتگاه ها البته زیارت کلمه عربیه ما پارسی بهش میگفتیم پیرون یعنی پیرها و پیر اصلش به معنی مرشده به معنی جایی که ما را ارشاد میکنه و پیروان پیر بهش میگفتن پیرو پیرو پیرو حالا اولا در مورد آتشکاه ها باید عرض کنم اینها از زمان خیلی قدیم به ما ارس رسیده حتی پیش از اشدرتوشت به طوری که میدانید اولین کشی که در بین آریا ها موفق به کشف آتش شد کی بود؟ یک پادشایی بود که اولین بار آتش را کشف کرد به نام حوشنگشاه پیش دادی وقتی این آتش را کش پرد و کم کم استفاده از آتش را یاد گرفتند کبریت نبود و آتش زنه نبود اگر کسی میخواست یک دهی محله بسازه اول میومد آتش کده در وسط میساخت دورش خونه ها و موازه های مردم میساخت و صبح که میشد میرفتن از آتش کده آتش فرمی داشتن میابردن خونه اجاق روشن میکردن کوره روشن میکردن تنور روشن میکردن و امور مردم میگذشت و اگر یک بختی به واسطه قفلت این نگهبانان آتش آتش خاموش میشد در قدیم دهات شهرها خیلی دور از هم بود و مردم یک دهی دشمن دیگری هم بودند. پس اگر آتش محلی خاموش می شود، تا دوباره آتش نمیآوردن در اونجا جشن و سور و پخت و پقد و شادی و خرممی ادارونده رخت بر میبد و این مسئله که هنوز ما میگیم اجاق روشن باشه چراغ خوند روشن باشه اجاقت سعد باشه از همون زمان قدیمه. حالا اینا هزاران سال پیش از عاش در توش می ده. و در تمام کشورهای متمدن اولیه آتشکده داشتن در هندوستان، در بین و نهرین، در ایران، در مصد، در چین و ژاپن، در یونان آتش هاشون به نام آتش وستا بود در روم آتش اولمپیا بود که هنوز اعترام براش خواهدن پس این آتشکده ساختن یه چیزی نیست که زمان زرتوش شروع شده یا بعدا درست کرده باشین نه بعدا از اون جایی که آتش مفید بود شد مقدس بعد اولین کتابخونه در اونجا ساخته شد اولین مدرسه در اونجا ساخته شد اولین اداره اوقاف اولین اداره دادگستری هر اداره که مردمان اولیه لازم داشتند برای رتق و فتق امور مردم در محل آتشکده ساخته می شود. حالا بعد از هزاران سال زرتوشت ظهور کرد وقتی ظهور کرد هنوز کبریت پیدا نشده بود هنوز وسیله آتش روشن کردن به این آسانی فراهم نبود پس در توشت خواه نخواه آتش کده را باقی گذاشت منتا فرمود نگاه به شعله آتش کنید و پی به احورا مزده ببری، زیرا اوشت آفریننده نه این حالا چرا فرمود نه این برای که در زمان قدیم مردم همه خدا پرست نبودند یه خدا نداشتند برای هر چیزی یه خدا قائل بودند اینها را بهشون میگفتند مشرک یعنی خدایان زیادی شریک این کار دنیا بودند و بعد وقتی آتش که شد آتش شد بزرگترین خدا برای که هم مرئی بود هم محسوس بود هم زمستون باعث گرماشون می شدد هم تاریک با از شبای تاریک باعث روشنایییشون می شد هم پخت و پذشون درست میکرد. این از هر خدایی در مردمان اون زمان این آتش مضورتر از همه بود. پس اش در توش که آمد هنوز آتش کده لازم بود برای تا وقتی ازش پرسیدن یعنی از اش در توش پرسیدن. این اهورا مزده که میگی این چجوره عشوز در توش فرمود من نمیتونم خدا را شبیه به یه چیزی بکنم گفتن ما تا حالا خدایی را میپرسیدیم که میتونستیم ببینیم هچ کنیم حالا شما میگید خدایتون اصلا با دیده سر دیده نمیشه پس ما چجور بشناسیم فرمود اگر من میخواید من خدا را شبیه به چیزی کنم میتونم بگم خدا نوره ولی نور همه نورها از این جد در عوستان میگه اهورا مزدا شیدان شیده شید یعنی نور خرشید یعنی نور خور محشید یعنی نور ما شید یعنی نور مر و شیدان شید یعنی نور همه نورها و می بینیم بعدا پیامبران غلالعظم دیگری که پیدا شدن مثلا موسی وقتی ظهور کرد وقتی بالا کوه تور رب که فرمان خدا را بگیره خداوند به شکل شغله آتش در درختی برش نمودار شد و گفت ای موسی تو در حضور پروردگارت هستی اینجا جای مقدس است پس اونجا می بینیم در مذهب یهود خدا به شکل نور ظاهر شد ایسا وقتی ظهور کرد باز فرمود خدا نور مهر و محبت و دوستی و عشق و علاقه و علم و دانش و ایناست بعد حضرت محمد که ظهور کرد بعد فرمود الله و نور از سماوات و العرض خدا نور آسمان ها و زمین است بعدا ادبیات ما هم هر وقتی یک چیز خیلی خوبی می خواستیم کنیم به نور و فروغ و روشنای تشمیه می کردیم مثلا می نور دانش نور راستی و درستی یا فروغ محبتومه و بعدن هم یکی از شوارا فرموده که اون آتش عشق هست کندر نیفتاد اون نیزن که نی میزنه این هواتون نی نیست این عشق و علاقه این آتش عشق و علاقه ای که اینجور خوشتداست آتش عشق هست در نی فتاد جوشش عشق هست کندر می فتاد آتش هست این بانگنایو نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد پس می بینیم ادبیات ما ادبیات دیگر کشورها هر چیز خوب را به نور و فروغ و هر چیز بد را به تاریکی تشبیه می‌کردند پس از اینکه ما هنوز آتش کده داریم این یک چیز تازه‌ای نیست یک الشیه از نیاکانمون به ما رسیده و الان این را به منزله نور آتش را به منزله قبله قرار میدیم برای که زردوش کفت خدا نور همه نور هاست پس در صبح رو به خرشید زور یعنی در مشرق زور رو به جنوب از رو به مغرب و در شب در قدیم فقط آتش بود دیگه نه برق بود نه گاز بود نه دیگر بود فقط آتش رو به نور آتش نور را قبله خود قرار می دادن ولی الان که هر آن می تونیم با کبریت آتش روشن کنیم دیگه مجبور نیستیم در موقع عبادت کردن بریم نور آتش آتش قده ازش استفاده کنیم ما تو خونه هر نوری که می تونیم ایجاد کنیم و حتی میده اگر یک اتاقی اتا... هیچ نوری نیست رو به پنجره بیشتید که روشندتر کار باشه و الان این آتشی که ما نگه داریم به عنوان قبله نیست به عنوان مشعل فرهنگ و تمدن هزاران ساله ماست که ما اینها را حفظ کردیم که ما اینکه رومی ها هم آتش اولمپی رو بهش افتخار میکنم هنوزم در کشورهای خارجی وقتی یک جشنی یک شادی میخوان همه آتش روشن میکنند که ما که در ایرانم آتش بازی و چراغونی و اینا برای که بشر از دیدن روشنایی دلش شاد میشه روحش روشن میشه پروزان میشه پس الان اون آتشی که از همه قدیم تره در هر شهری این را بهش میدیم آتش برهرام ولی آتش هایی که بعدا درست شد بهش میدیم در میر پس اینجا را بهش میدیم پرستشگاه ها یعنی آتش برهرامو در میر پس پرستشگاه هامون اینه نیایشگاه هامون ارش کردم در دهی یا جاهایی که یک اده کمی در زندگی میکردن و نمی در مر درست کنن موبد استخدام کنن شب و روز پرستاره آتش باشه اینها می اومدن پیران درست می یعنی پیر شاور را, را دو زد شاور میزد، و اینها و اینها درجه دوم پرستشگاه بود یعنی نیایشگاه ها و آتشش هم دائمی نبود اسفند کنندش می داگذاتان و خوشبو هوا تمیز میکرد و اوستان می خوندن و میرفند. پس این منازل متبرکه درجه دومه درجه سوم این پیرون زیارتگاهاست که اینها هم از زمان خیلی قدیم به ما ارث رسیده.یهدونید پیش از اش در دو مذهب از همه مهمتر بود، یکی مذهب مر پرستی، یکی مذهب ناهید پرستی، مر یعنی نور آتش چون میدونید نور خورشید. در زمان فریدون متوجه شدند که این خورشید که میدیم باعث زندگی گیاه و حیوان و انسان میشه، این ورش خورشید نیست بلکه نور خورشیده و نور خورشید را مهر می گفتند و مهر بعداً به معنی خداوند مهر و محبت و عشق و علاقه و پیمان و عهد و میونه و قضاوت و دادگستری و اینها پس در مهر که قبل از زرتشت درست شده بود بود می گفتفتنمهر را می ستاییم که پیش از برآمدن خورشید از کو تلو می کند و همین موقعیست است که الان بش میدن از آن صبح تقریبا یک ساعت و نیم قبل از برآمدن خورشیده که در عربی بش میدن فجر نور فجر یعنی انفجار نور موقعی که نور منفجر میشه از کوه سردر میاره. و این موقعی که گاه اشهان ماست اشهان اشه یعنی نور هن یعنی زدن. پس پیش از این که گاه هاون بخونیم یک ساعت و نیم قبل از اون که افق روشن میشه این بهش میگیم گاه اشهان حالا پس مهر قابل پرستش بود در ایران قدیم و می گفتن مر در کو زاییده شده و در کو می میرد چون خورشید می خورشید از کو در میاد دوباره تو کو فرو میره پس مر شد خدای بزرگ بعدن یک خدای دیگر به آمد به نام ناهید البته اینا قبل از در ناهید میگفتن گفتن و در قدیم هر چیز طبیعی که با دید خودشون نگاه می این را تشبیه به صفات انسانی می کردن. و می چشمه و رودخانه و دریا و اینها زنن مثل این که زمین هم می گفتیم زنه می گفتیم مادر زمین مادر وطن زن زمین را هم به مادر و زن تشبیه می کردن. پس می چشمه هم مثل مادریه که شیر میده به گیاه و حیوان و انسان پس چشمه و روتانه را به زن تشمه میکردن بعدن گفتند که مر پدر آفرینش و ناهید مادر آفرینش و این دوتا پدر و مادر موجودات دنیا حساب میشدن بعدن هر جا غار کوی بود می گفتن اینجا جایی که مر طلوع میکنه کنه و غروب میکنه و هر جا در دامنش چشمه آب یا آبشار یا رودخانه آبی بود این را منتسب میکردند به اناهیتا ناهی حالا این آثار خیلی قدیمه ما نمیتونیم بگیم از چه زمانی شروع شده پس این پیله سبز که میبینید چک چک آب داره میچکه یک زمانی آبشار بزرگی بود که از اونجا آب میرفت میرابت به کویر لوت و دریا نمک که الان خوش شده پیله هریشت میبینید اون بالای تپه قرار گرفته پایینش یک رودخانه است که فقط موقع بارندگی زیاد سیلاب توش میوفته ولی در قدیم چون این درست این ماه تیر که میگیم این اسم ستاره است و این ستاره که پیدا میشد میگفتیم فصل بارانه و درست موقعی که در هندوستان فصل برساد یا باران مغزمی هست در ایران هم بارندگی زیاد میشد یعنی این دریا نمک و دریای شور که مربوط بود به دریاچه بالخاش و بایکال و دریاچه هامون سیستان همه اینها را آب گرفته بود بخار زیادی بلند می و به طرف ایران سرازیر میشد و بارندگی زیاد بود که ما این که در زمان هخامنشیان این سیستان و بلوچستان این انبار غلاط کشور ایران بود یعنی به اندازه گندم و جو و غلاط به وجود می آمد که کافی بود برای تمام مردمان ایران پس اون زمان در شرق ایران بارندگی زیاد می و درست عشم تیرم رو این ما گذاشتن برای که این ستاره ستاره بارانه و این در اوستا تیر رو می تشتر و در خرشینیاهش می گیم تشتریم ستارم ریونتم خراننگنتم یزمیده یعنی تشتره ستاره تشتر رایومند و خرمند را می زدایم پس در قدیم این ماه تیر بارندگی زیادی میشد و در نتیجه این پیله سبز و پیله هریشت و پیله بانو و هر جا اسم زن روش بود این رو منسوبه به زن می گفتیم پس پیله هریشت میگیم مال یک اسم زنه پیر خاتون بانون اسم زنه پیر سبز اسم زنه و در هر جا در ایران به نام کتل دختر پیر دختر خانه پیر اینها یک زمانی آبشار و های زیادی جاری بود مثل تاق بستان در جنوب کرمانشاه هنوز هم اکس میر کشیده شده و در اون دامنش که رود زیادی از زیر کو در میاد یک به صلاح اتاقه درست شده که یک فرشته زن از اون بالا داره آب میریزه پایین که میخوان بهشون بدن که این مربوط به ناهیده پس در تمام ایران حتی در نزدیک یاد یک دهی داریم به نام مهریز در اصل مهریزت بوده و نزدیک اون مهریزت یک آبشاری یک آبی زیرکو در میاد آب فراونی بهش میگیم بیر نمیدونم رفتید تماشا کردید که در بالاش یک ساختمان هاییست و معبدی بوده که اونجا به نام ناهید بوده این ستی پیر که ما میریم قبل از این که بریم پیر سب اونجا زیارت میکنیم شتی یعنی مادر بزرگ و ستی پیر یعنی پیر مادر بزرگ و در دامن اشک روتخانه زیادی بوده که این روتخانه با روتخانه جلو پیرهرشت و اینا وارد دریاچه نمک می شده و آب می داده به اون دریا که خوش نشد بعدن این زیارتگاه ها وقتی به دشت مازردشتی ها رسید ما آمدیم یک داستان دیگر براش درست کردیم این زیارتگاه بعداً به دست برادران مسلمانمون افتاد، اونا آمدن یک داستان دیگر درست کردن مثلا این زیارتگاه یا کوه بیبی شهربانو این اصلش زیارتگاه ناهید بوده و تمام این باستانشناسان اینو ذکر کردن خود مصطفی نوشته که این زیارتگاه بیبی شهربانو اصلش مال زردشتیان بوده و مال قبل از زردشتن بوده و مربوط بوده به اناهیت ها ولی چون به دست مسلمان ها افتاد این یک اسم روش گذاشتن که, که حد فاصل بین ایرانی و اسلام باشه و شهربانو دختر یزگرد که زن امام حسین باشه که هم جنبه ایرانیگری داره و هم اسلام این اسم روش کداشتن معلوم نیست اگر در آینده باز دست کی باشه یک داستان دیگه براش درست میکنن اینا پس این زیارتگاه های ما هم البته جنبه تاریخی و دینی داره ولی باز این زیارتگاهمون به دو بخش تقسیم میشه یک بخش که بیشتر مربوط به عوستاخوندن و عبادت و در این حال کفری محسومانه این همون پیرسبز و پیره ولی بعدی زیارتگاه همون از جنبه تاریخی و سیاسی به ما ارش رسیده و باید اونها رو هم زیارت کنیم مثل زیارت, پیر زیارت تخت جمشید زیارت تاق پستان نخش رستم نخش رجب و بسیاری از جاهایی که آثار تخت و تاج و نقوش و مجسمه های نیاکان مانه پس ما باید در نظر داشته باشیم این سه جاها در نزد ما زردوشیان مقدس و از نیاکان به ما رسیده و ما باید این را حفظ کنیم که بتونیم به دست فرزندان خودمون بدیم ولی تاریخش را هم باید به اونا یاد بدیم خیال نکنن اینجا یک جاییست که همینجوری چون جای خوشاب و هواییست یا جای زیبا و خشنگیه ما برای خودمون درست کردیم نه این از قدیم ارث به ما رسیده و قدیمی ترین آتشکده هایی که ما در تاریخ می سه آتشکده بود که این هر سه پیش از زرتشت به وجود آمده بود اول آتشکده آزرگوشست در آزربایجان بود که سوختش از گاز نفت بود دوم آتشکده آزرفرنبغ در جنوب ایران در پارش بود و شوام آدربرزین مر در نشابو بود و اینها از زمان خیلی قدیم گازی که از زمین بالا می به وسیل برق یا به وسیل روشن شده بود و مردم با نظر اعجاب به این نگاه می و کم کم شده بود یک فاضلگاه، جای مقدسی و مردم می هر دین و مذهبی داشتن اونجا عبادت می کردن پس این سه آتشکده که معروف بود هر میگن یکی زمان جمشید بوده یکی زمان فریدون بوده یکی هم بعدا این به وجود آمد. و حتی جایی که امروز به نام تخت سلیمان میخوانیم یا مسجد سلیمان نزدیک آبادانه اونجا هم یک آتش کده بزرگی بود که به نام آتش جمشید معروف بود و میدونید هر جایی که در ایران معروف به جمشید بود بعد از اسلام تبدیل شد به سلیمان گاهی جایی که مهم بود و منتصب بود به جمشید میگفتند مال سلیمانه اونجا هم جمشید را اونجا مسجد سلیمان خواندند. پس با این طول و تفصیل امروز اگر خواسته باشین ما به جای اون آتشی که الان در معابد ما میسوزه، چراغ برق روشن کنیم گاز روشن کنیم هیچ مانعی نداره که ما این که الان در دشیانی که در امریکا هستند در انگلستان هستند مجمر آتش هست ولی از گاز مثل اینی که زیر زغال سنگ داره آتش می همین جوری جلوه داره و اونجا میستن و نماد می خونن. و آتش کده هم در قدیم حتی بعد از زردوش نوع آتش کدی داشتیم یکی آتش رهرام در, در پای تخت بوده یایی که پادشاه اقامت میکرد، سلطنت میکرد اونجا و در شهرستان ها آتش آدوریان بوده و در دهات آتش دادگاه و این آتش دادگاه همیشه نمی سخته. برای که می دونید آتش هر جا هست باید دو نفر موبد به نوبت کشیک بدن هزینه بر می داره زیاد سوخت لازمه ولی در دهاتی که لزومی نداره اده زیادی نیستن خرج زیادی لازم نیست بشه هر وقت ادگی جمع میشدند، آتشی روشن میکردند، خوشبو روش می داشتن و مردم نور اون آتش را قبله قرار میدادند و خدا را پرستش میکردند. الان وقتی که ما قبله خودمون که نور باشه. خواسته باشین تغییر بدیم میگن هنوز وقتش نیست. برای که الان این شعله که ما در آتش کده داریم تنها قبله نیست این مشعل فرهنگ و تمدن ایران باستانه و اگر ما خواسته باشیم با برق روشن کنیم یک دفعه برق قطع میشه و ما این مشعلی که چند هزار ساله روشن نگهد داشتیم با قطع 5 دقه برق از بین میره یا با گاز روشن کنیم گاز قطع بشه یا بشکه گاز تمام بشه این مشعل فرودان چند هزار ساله ما دیگه بیمانی میمونه و عده میگن هنوز آتش طبیعی که با چوب بسوزه یک جلوه دیگری داره و به نظر خیلی عالیتر و بهتره پس هنوز ما این آتش طبیعی را نگه داشتیم و وقتی این کنیم با قبله مذاهب دیگر مثلا مسیحی ها را در, موا... در کلیسای خودشون میگذارند و رو به اون عبادت میکنن صلیب یه چیزی ساخته دست بشره یهودی ها اون صندوق عادی که تورات توشه اونجا میگذارن جلوی خودشون این هم نوشته دشت بشره بطفرست ها جلو خودشون میگذارن یا رو به یک شهر را آبادی میکنن آیا در برابر قبله های دیگر اگر نور و فروغ اهورامزدا یک جای جلوگر باشه که نظر مردم را به خود جلب کنه و تنها تمرکز فکری به وسیله نگاه کردن به روشنایی است که فکر دیگر از کله آدم مهب میشه و فکر انسان متوجه اون نور خواهد بود امیدواریم این سگر تحول آتشکده را در نظر داشته باشیم با هم میهنان خودمون در موقعی که شراعی کردن بتونیم جواب بدیم و بگیم اشو در توش بانیان آتشکده نبود. قرنها پیش از او در بین تمام ملل متمدن آتشکده بود. کما این که ما اینکه آتش اولمپیا که همین یه هفته پیش جشن اولمپیا را برگزار میکردن در حضور اون مشعل تمام مدت جشن باید در زیر نور اون آتش اولمپیا روشن باشه نشون میده که بین رومی ها بین یونانی ها حتی بین هندوها ها هنوز هم هست اینها هنوز در معابد خودشون آتش را روشن میکنن و اون را یکی از صفات اهلا مزدان میدونن که همون شیدان شید باشه ادهی از همکیشان و دیگر ایرانیان پرچیدند که مذهب شاهگشداس و لهراس یعنی خانواده کیانیان پیش از اینکه دین عشودرتوشت را بپذیرند چه دینی داشتند البته این را باید ارز کنم که آریا ها شغل اولشون دامپروری بود و گل چرانی و دنباله گله مجبور بودند حرکت کنند یعلاقش راخ کنند تا بتونند همیشه مرتا و چراغاهای خوب و سبز در دسترس داشته باشند و چه بسا می که سه برادر که تعدادی گوسفند از پدرشون ارز پرده بودند اینها مدتی با هم بودند و این گله ها رو زیاد میکردند وقتی گله زیاد میشود همه این گوستفنده اگر یک طرف حرکت میکردند مرتا و چراغا و علف کافی گیرشون نمی اومد مجبور بودند برادران با گوستفندانشون متفرق بشن و هر یک یک طرفی برند و چون مرتب در حرکت بودند موقعی که سرما میشد شود می جای گرم مدتی موقعی که گرم میشد می شود می جای خنک یعنی علاقش لقمی کردن هیچ وقت ایرانیان در همون موقعی که دنیا گرفتار بود پرستی و شرک بود هیچ وقت بود نمی ساختن برای که های سنگین را نمیشد روی اولاغ و گاو مرتب حرکت داد پس به این واسطه ایرانیان هیچ وقت مذهبشون پیش از مذهب توحیدی هیچ وقت بودپرست نبودند ولی مشرک بودند یعنی خدایان بیشماری را در آسمانها تصور میکردند همون طوری که ما الان در باره ایزدان و فرشتگان خیالاتی داریم اون زمان هم خدایان را به این شکل تصور می کردن. ولی مذهب رسمی ایرانیان در زمان شاهان کیانی و کیانیان مذهب مهرپرستی بود مهر در اول به معنی خرشید یعنی به تجربه ایرانیان درک کرده بودند که اگر خورشید نباشه نه گیاه به وجود میاد نه حیوان نه انسان نه موجودات و همه چیز نابود میشه. پس گفته بودند که مر خالق همه چیزه. و برای اینکه این صفت این خالق را به مردمان اون زمان که همیشه خدایان را شکل آدم تصابه می کردن. اگر می‌گفتند مر میر شنوا و بینای کله کسی نمی فهمید یعنی چه پس آمدن مسئله زدن گفتن میر دارای هزار گوش و بیور چشمه یعنی هزار تا گوش داره و ده هزار چشم یعنی که هزار گوش یعنی شنوای کله همه چیز رو میشنوه ولو شما یک مسافت دو یک حرفی بزنید او میشنوه پس شنبای کله هزار گوش و بیور بیور یعنی ده هزار دارای ده هزار چشمه یعنی بینای کله همه چیز رو میبینه و این بعدن برای احور آمزده ما گفتیم هروست توان هروست آگا و هروست خدا هروست توان طبان یعنی توانای کل هروست آگا دانای کل هروست خدا صاحب همه چیز بعدن این مذهب میر کم کم به این درجه رسید که مردمان دانشمند اون زمان میگفتند هیچ موجودی بدون پدر و مادر به وجود نمیاد پس خدا یا باید نر باشه یا ماده از این جهت گفتند مرگ مردی پس مرد به تنهایی نمیتونه موجود به وجود بیاره آمدند یک زنی بش دادند به نام ناهید اناهیتا و گفتند میر پدر آفرین نشه و ناهید مادر آفرین نشه حالا ناهید ما الان بعد از 16 ترشت از مقام خدایی تنزل پیدا کرده شد فرشته و ما میگیم الان انرد بیسور اناهیتا فرشته موکل بر آبه و مقصد آبزور که میخونیم این در مده ناهیده و مهر که میخونیم و خرشیر نیاش اونا در مده مهره حالا بعد میگفتن که برای که به تجربه گفته بود دیده بودن که تا آب نباشه گیا وجود نمیاد حیوان به وجود نمیاد انسان به وجود نمیاد ولی باز آب تنها خودش مخلوق نمیتونه ایجاد کنه باید نور خورشید باشه که ایجاد کنه ابر و بارون را و این دوتا با هم میتونن هشتی را به وجود بیارن بعد گفتند مر از کو زایده میشه و در کوه میمیرد که الانم که میبینیم خورشید از کو در میاد و در کو می میره. بعد اینان هر جایی در ایران که یک قار کویی بود سبز و خرم و در دامنش چشمه آب بود یا آبشار بود یا چکچک چک آب میچکید اونجا را زیارتگاه یا به قول خودشون پناهگاه یا پناه شدن اون مهر و ناهید می دونشتن. و هر جا در ایران هنوز یک جایی به نام مهر خانده میشه یا یک جایی به نام زن خانده میشه یا پیرزن یا دختر اینجا معروف به زیارتگاه مهر و ناهید بوده مال قبل از زردشت زیارتگاه پیر سبز میبینیم قار کویه و در دامنش این چکچکو چکچک آب میچن ولی قدیم آبشار بزرگی بوده موقعی که پشت این کوها که الان خشکه و دریای شوره دریای نمکه و هیچ نوع آبی نیست قدیم دریای سیاه و دریای مازندران وشل به هم بوده وصف بوده به دریاچه بالخاش و بایکار وصف بوده به این دریاچه شور وصف بوده به دریاچه سیستان و همون که هنوز هم دریاچه و بعضی دریاچه های در وسط اینا هست ستی پیر ستی یعنی مادر بزرگ و ستی پیر یعنی پیر مادر بزرگ که هنوز هم میگیم نمیدونم این چا یک روزخانه بوده یک سرش مشهد بوده و یک سرش به اینجا و این داستان هایی که با آب مربوطه هنوز ادامه داره این داستان مذهب پیش از اش که پادشاهان کیانی داشتند مذهب مهرپرستی بود. و این مذهب میرپستی از زمان جمشید ادامه پیدا کرده بود تا اون زمان و به طوری که فردوسی از روی کتابهای پهلوی اون زمان با امانت داری کامل اینها را از پهلوی به شعر درآورده درباره دین لهراست که پدرش راست بود و هنوز دین در تشتی را نپذیرفته بود و گشتاس که پسرش باشه بعد از اینکه به حکومت رسید در دوست دین خودش را در اون دادگاهش یا حضورش اعلام کرد می فرماید چو گشتاس را داد لهراز تخت فرود آمد از تخت و بربست رخت یعنی وقتی پسرش را پادشا کرد خودش دیگه انزوا اختیار کرد و در یکی از معابد اون زمان که در اوستا آدر برزین مهر اسمشه میشه و این آتش آدر برزین مهر که در نیشابور و خراسان اون طرف بلخ و اینا بوده از گاز نفت میسوخته که باز خود فردوسی میگه که که آن مهر برزین ابی دود بود یعنی دود نمی کرد فروزان ابی و اود بود حیضمو اودم نمی سوزند ما همیشه روشن بود و آتش کده های پیش از آشودارت توشت که قانه ها همینجور ادامه داشت و از گاز نات می یکیش همون آدر بزرین مهر در خراسان دیگری آتش آذرگو به در آذربایی که هنوز هم گاز نفت در بعضی از شهرهای آذربایجان شرقی شرخی داره روشنه که میرن زیارت میکنن مثل تنور اگه آتش در میارن اونجا میرن نظر و نیاز میکنن مردم با وجودی که زردشته نیستن اون اعترام اون آتش به جای خود منده یکی هم آتش کاریان فارس بوده که اونجا هم با گاز نفت میسوخته و همینطور معبد جمشید که بعد از اسلام هر جا اسم جمشید بود تبدیل کردن به سلیمان و مسجد سلیمان یکی از آتش کده بوده که باز رو گاز نفت میسوخته که وقتی انگلیس ها و در آبادان چاه نفت زدن اونجا دیگه گازش خاموش شد تمام ملل متمدن قدیم آتش داشتند و این آتشکده کده دنباله مذهب مرپرستی بود و همونطوری که بعدن ما هفتم شاسپند داریم مرپرست هفت درجه تکامل داشتند و طور این مرپرستی همیت پیدا کرده بود که نه فقط در تمام ایران به این مذهب در آمدند بلکه به روم هم رفت و پیش از اینکه که امپراتور روم مسیحی بشه مذهب مرپرستی داشت و این شب یلدا که ما اسمش کداشتیم یا شب دیجور شب پیش از روز اول دی چون طولانی ترین شب و روز اول دی و اول بزرگ شدن روزه از این جهت میگفتن مر اون شب زایده شده و روز بعد هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه و بعد مسیحی ها موقعی که گسترش پیدا کرد دین مسیح در روم و نمی دونستن مسیح که متولد شده و این 25 دسامبر یا اول دی به نام شب یلدا اصلا کلمه یلده از تولد میاد ولی یولدو دو یعنی تولد و هم به نام تولد میر خانده می شده این را به نام تولد مسیح جهاز کردن و بسیاری از مراسم ایران باستان وارد مذهب مسیحیت شد و اگر سعی کنید هر دو مذهب را خوب اطلاع پیدا کنید خواهید دید تا چند آزه مذهب میر پرست ایران نفوز پیدا کرده بود در اروپا و حتی این به صلاح زیارتگاه مر یا معبد مر اینها کم کم در تمام اروپا گسترش پیدا کرده بود منتا اینا آمده بودن با خرافات و مهومات بعد اضافه کردن و گاور و قربانی مهر میکردن و حیوانات را میکشند برای خدایانشون و اینا وقتی آشوب در توش آمد این قربانی حیوانات را برای خدایان و ایزدان و اینها قدغن کرد و گفت اگر می خواهید به قراح خوشنودی شکم خودتون ببرید ببرید ولی تصور نکنید سر گوشپند ببرید اغرامزدا و ایزدان و هم و اروای نیاگون شاد میشن حالا دنباله این شادروان فردوسی میفرماید که گشتاس را داد لوهراز تخت فروید آمد از تخت و بربست رخت به بلخ گزین شد بدون نوبهار که یزدان پرستان اون روزگار مران خانه را داشتندی چنان که مر مکه را تازیان این زمان یعنی در زمان زردوش که هنوز دینش مزم پراکنده نشده بود مهر پرستا در شهر بلخ البته اینجا آتشکده نوبهار را ذکر میکنه ولی در عوشتا میگه آتش مهر برزین بوده اون زمان اونجا را مثل این که بعدن مکه قبله مسلمان ها شد اون زمان در ایران این شهر بلخ که بعدن به نام بلخ بامی یعنی بلخ روشن معروش شد و میگفتن که خورشید پیش از این که در ایران طولو کنه از بلخ سر از کودر میاره و از این جهت بلخ را به اصلا طلوگای خرشید یا مهر میر میدانستن و به نام بلخ بامی یعنی بلخ روشن نام نهادن و میگه در زمان بله بعد در همون آتشکده کده بلخ دو راست به اصلاح از سلطنت کنار گیری کرد و به نیایش اینا پرداخت و میفرماید نیایش همی کرد خورشید را نه اینکه خورشید نیایش نمیخوند یعنی نهر را میپرستید نیایش همی کرد خورشید را چنان چون که بود راه جمشید را پس جمشیدم در دردی نیوکانه ما مذهب میرپرسی داشت و از اون زمان تا زمان شاه مذهب مرپرسی در ایران متداول بود. بعد از اینکه عاش در در دربار گشتراشا حاضر شد و گشتاس دانشمندان و بزرگان و اینها را جمع کرد و با زردشت مباحثه و مجادله دینی میکرد تا اینکه همه مجاب شدند و گشتاس با همسرش کتایون و اسفندیار و جاماس با پشوتن و اینها به دین زرتشت در آمدن بعد از اینکه ارجاس به تورانی در که گشتاس دین زرتاش را پذیرفته و دست از دین نیاکانشون کشیده یک نامهی به گشتاس نوشت و گفت که ای گشتاس به طوری که شنیدم تو گول یک پیر مردی خوردی و دست از دین آبا و عیدادت کشیدی حالا من چرا براد پیشنهاد میکنم اول دست از این دین بردار دوم اگر حاضر نیستی باید به ما باج و خراج بدی اگر این دو تام قبول نداری من میام باد میجنگم بعد گشتاس یک مجلس شورای درست کرد از زردشت و دانشمندان و وزرا و گفت این نامه ارجاست به و ارجاست که پادشاه توران باشه نوشته این پیشنهادها را کرده و نوشته که دست از دین اجدادی چرا برداشتی اینجا باز یک نکته ایست که باید متوجه بشیم که تورانی ها با ایرانی های زمانکیانیان یک دین داشتن و تورانی ها هم اصلا ایرانی بودند. برای که به طوری که اون روایت داریم فریدون سپسر داشت ایرج و سلم و تور ایران اون ملکی بود که به ایراج رشید سالم اون سلم ها که سامی ها هم بعضی میگن معنی میده و تور تورانی باشه و حتی کلمه سلمان هم میگن از میاد آن دو معنی داره در فارسی هم جمعه و هم علامت نشبیه مثل بابکان یعنی از خانواده بابک سامان یعنی از خانواده سام سلمان یعنی از خانواده سالم پس اسم فارسی و که به عربی و اینا نداره پس تورانیان هم شوبه از آریه ها بودن من تا اینها دیرتر شهرنشین شدند و بیابانگردی را ادامه میدادند و گشراژ از این مشاورین اشخاص حالا این سراحی که شاه توران جلو ما گذاشته تکلیف ما چیه هر یکی یک نظری دادند و بعد وقتی که به اشودارتش رجوع کردند که خواب ای بر نظر شما چیه بافردوسی میفرماهد شاه جهان گفت در تشت پیر که در دین ما این نباشد حجیر که تو باج بدهی به سالار چین نه در خرایت به آین و دین یعنی حراک حاضر شدید دین منو ترک نکنید ولی من اجازه نمیدم باج بدید به اینا و این بود که آماده شدم گفتن خب حمله می‌کنی بکن ما دفاع می حالا اعدیاس دنبال بهانه می‌گشت یا فرصتی می‌خواست پیدا کنه که در موقعی که بتونه سربازان و لشکریان ایران را شکست بده حمله کنه. بعد شنید که گشتاش نسبت به فشارش اسفندیار خشمگین شده. و او را تبیید کرده به سیستان و بلوچستان و این طرف ها. و خود گشراس هم رفته بود خارج از بلخ پس پادشاه تورانی وقت را غنیمت شمارد و حمله کرد و دو ماه شهر بلخ در محاصره قرار گرفته بود ولی بالاخره تورانیان به واسه خراب کردن زیر دیوار وارد شر شدند و شروع کردند به قتل عام مردم و قدیم میدونید سربازان جیره و مزد نمی گرفتند حتی با سپاه و با اسب و اسلحه خودشون هم می اومدن به جنگ به امید اینکه موقعی که پیش بردن حق داشتن هر قدر غلام و کنیز بگیرند یا مال مردم به غنیمت بردارند مثلا میگفتند تا چه روز حق غارت دارید تا پنج روز حق غارت دارید و اینها این مدت اولا سای میکردند هر کی میبینند بکشند و در اون زمان وقتی که لشکر تورانیان وارد برخ شد یه ادنزیاد ایرانیان از دروازه های دیگه فرار کردند رفتند بعد اینا شروع کردن به قتل آم و در اونجا عشو زرتوش دیگر که در معبد برخ اونجا به نماز و دا مشغول بودند قتل آم شدند حالا ادهی باید می که آیا قبر زرتوش کجاست حالا ما باید این موقعیت را در نظر بگیریم دشمن وارد شهر شده هر کی زنده از میکشه و یکی از هدف عمده از بین بردن زردوش بود که نباشه و حتی آثارش هم نمونه و اینها یاشه دیه کشته شدگان دشمن را دفن نمیکردن هزاران کشته بود اینا وقتشون به غارت و اینا مذخور بودن نمی اومدن این کار بارن. برای اینکه که در هوا و پاورت و کند نشه بوی بد نده مرده رو, رو روی هم می ریختن و آتش می دادن و به عقیده بسیاری عشوذر تشت هم در اونجا با دیگر اجتاد مردگان سوزانده شد که بعدن در زمان ساسانیان که دوباره این توجه به آتش خیلی اهمیت پیدا کرد ما می که نه زردوش نسوخت بلکه طور براتور وقتی آمد زردوش را به شهادت برسونه اون تسبیحش را پاد کرد به طرف طور براتور و طور براتور آتش گرفت و سوخت زردوش نسوخت و اینجا می بینیم که یک اشاره عکسی شده بر اون که شاید واقعا اتفاق افتاده و اون جایی که این معبد بوده امروز میگن اینجا به نام شهر مزار شریف معروفه در افغانستان حالا کسی نمیدونه این مزار شریف منظور از اون شریف چه کسیه هیچ کسی نمیدونه و از قدیم میگفتن اینجا مزار شریف جایی بوده که ادهی کشته شدن و اجسادشون دفن شده و اینها و بعید نیست که اون مزار شریف اگر زردوشت در اونجا دفنم نشده باشه اونجا محلی بوده که اشو زردوشت به شهادت رسیده و اهور توش و اون پیروان اولیاش هیچ وقت جسد را اهمیت نمیدادن، به خصوص اهور توش در گاتا چندین بار میگه ای اهورامزدا من حاضرم تن و جان خود را در راحت فدا کنم اون وقت چه لزومی داشت که پیروان اولیاش اون فرمانی که از خداوند یک آمده، اونو ول کنند بچسبند به جسد پیغمبر که خودش گفته بود حاضر در راه پروردگار فدا کنه از این جهت ما زردشتیان باید افتخار کنیم که خوشبختان وسیله پیش آمده بود که ما ندونیم جسد زردوشت در کجا بوده و جور از بین این رفته بلکه به عوض مرد پرستی به عوض اینکه قبر زردوشت را بریم پرستش کنیم گفته زردوشت را عمل کنیم و اون چه فرموده باید عمل کنیم این بهترین دستور و زردوشت عشاست.